وقت است که از سبز جهان آرایند، رایند، موسا سفتان ز شاخ کف بنمایند، ایسا سفتان ز خاک بیرون آیند، و از چشم سحاب چشم ها بکش تا ننهی بر تن خود قصه و درد، تا جمع کنی سیم سفید و زر زرد، زر زن پیش که گردد نفس گرمت و سرد، با دوست بخور که دشمنت خواهد خورد. هر جرعه که ساقیش به جا مفشاند، در دیده آتش غم بنشاند، سبحان الله زباده میپنداری، آبی که زه سد در دلت برهاند. زاهد به کرم تو را چما نشناسد، بیگانه تو را چو آشنا نشناسد، گفتی که گنه کنی به دوزخ برمت، این را به کسی گو که تو را نشناسد.